برای که از حسرت ها انسان بتونه رهایی پیدا کنه بهتر این هستش که نگاه کنه چه چی چیز خواهی باعث حسرت در آخرت میشه اون چیزی که باعث حسرت در آخرت میشه نبود عمل خالص هست ولی اون چیزی که باعث این میشه انسان قبلت کنه در دنیا و یا عملی انجام نده یا عملی اگه انجام میده با مقبول بودن و قبولی خدای متعال همراه نیست چند چیزه یکی از اونها رفیق دوست همراه همشین همشین خوب انسان رو به خوبی ها میکشونه و همشین بد انسان رو به بدی تشویق میکنه همراه میکنه سو میده صحبت طالح تو را صالح کنند صحبت صالح تو را صالح کنند مصاحبت و همنشینی با صالحان انسان رو به صلاح می و مصاحبت و همنشینی با طالحان و بدار، انسان رو به بدی رضا تأکید شده مجالست اخوانتون مجالست با دقت باشه اخوان و برادران مؤمن رو دوست و همیشین و رفید خودتون در آب بدین مسئله همراهی و دوستی بسیار مسئله است در دنیا اگر تو دنیا انسان همراه خوب داشته باشه احتمال کاجدایی احتمال بد عمل کردن بد فکر کردن دروس خیلی کمه همراه خوب هم سبک فکر کردن درست رو به انسان یاد میده و هم رفتار و سبک رفتاری درست رو لذا باید در انتخاب دوست بسیار دقیق کرد که پایین تر از خدا آدم هستن اینها شاید خیلی نافع نباشن یقینا نافع نیستن همیشه سعی کنیم در این حال که از همسایه‌های خودمون ها تو انتخاب کنن یه قدم بالاتر هم باشه از جهت رفتار اخلاق ادب به جهت معرفتی که دارم، مهربانی که دارم انسان همراهشون میشه و حالون که هوا پرستم هوای نفسشون، اونچه دلشون میخواد خیلی قویه هرچی که دلش میخواد عملان میره سمتیش فکلیش رو به عنوان یک نعمتی است که از خدا بهش و خدا این نعمت فکر کردن رو به انسان داده فکرش رو ابزار و وسیله قرار میده برای رسیدن به امیال و اونچه دلش میخواد هرچند فکرش قوی هست درستش خوبه هر آنچه خدا به عنوان نعمت دنیایی بیش اینا رو همسو میکنه برای رسیدن به خواسته های دلش این رفیب در این حال که با معرفته برای انسان تو بغض خیلی هم رسونه خوبی داره اما برای رفاقت و هم و دوست شدن و دل دادن به این فرد خوب نیست. ما انسانی که با پروازهای هواپرست رفیق هست، او هم همراई میشه. حالا دیر یا زود رضا باید در انتخاب دوست خیلی دقت کرد چرا که مصاحبت او میتونه انسان رو آقابت بشر کنه و یا آقابت خیر. یکی پس مسئله دوست و دوستیابی هست که باید دقت بشه کم دوست داشتن خیلی از زیاد رفیق و دوست داشتن بهتره به شرط فیقای عاقل باشن. صدا فیقای عاقل کم داشته باشه بهتر از این است که صد تا رفیق بی‌عاقل داشته باشه. بی‌عاقل اون کسی که هوای نفسش و هیجانات درونیش رو نمیتونه کنترل کنه. اگر چه فیلی زیبا شه، باشه خیلی فیلی با معرفت باشه، مهربان باشه، اما کنترل به خودش نداره. این رفیق من رفیق خوبی باشه. امخوان در یه رفیقی به ظاهر معمولی باشه اما عاقل باشه یعنی عقلش مقدمه بر خواسته های دلشه اگر چه دوست میداره خیلی کار انجام بده ولی عقلش قویتر از میلش هست میلش و هوای نفسش در تذکیر قلشه این همیشین بهترینه یکی از چیزهایی که باز موجب مفارغت از اعمال خیلی میشه و به بالله موجب حسرت بزرگ و ازمان میشه بزرگترین حسرت رو که در قیامت انسان وقتی با خوبان دیگه نیمیتونه مشهور باشه و در جهنم با بدان و بدترین ها محنوس میشه حبارت از این هست که انسان اون مقدار کم از دستورات خدا رو که بهش میگن واجبات و دولی از محرمات اون رو به جان نخره در زمان حال در زمانی که الان ما داریم زندگی میکنیم بعضی مسئولیت لازم برای انسان پیدا میشه مثلا ازان نشونه این هستش که باید نماز کن اون زمان بنایش نمازشو بکنه سالی یک بار ماه رمضان میاد اون ماه رو رو بگیره گاهی در رفت ها نامهرم جلوی انسان سبز میشه اون لحظه از دور اگه میتونه راهشو عوض کنه نمیتونه چشمشو به زیر بندازه و همسال این کارهایی که در زمان حال زندگی انسان پیش میاد گذشته که گذشته معدوم نیست آیندم که هنوز نایمده پس ما مسئول زمان حالمون هستیم تو زمان حالم دستورات خدا خیلی کمه اون مدار کم اگر انسان توجه کنه به مخالفت فرمان رو با اختیار خودش پیش نیاره، زمینه و مقدمه مخالفت فرمان رو. تا وقتی به حرام و محلکه افتاد خدا کمکش کنید. اگر کسی مراقبت داشته باشه مقدمات و بسترها و زمینه های گناه رو به اختیار خودش پیش نیاره، اگر به محلکه گناه هم بی خدا ناجی هست و نجاست میده این مقدار هوا و حوث را اگر بشه با کور کردن زمینه و مقدمه از انسان دور کنه خودش با اختیار این ندار هیجانات رو دور کنه حتما خدا کمک میکنه کنه کسی که مراقب هست زمینه گناه رو برای خودش پیش مثل اون کسی هستش که در روایت فرمایش کرد خدای متعال در روایت قدسی هست که اگر یک قدم به طرف من بیاید من ده قدم به طرف شما میام. این مراقبت در همین اندازه یک قدم خدا حتما ده قدم به سمت ما میاد و به ما رو درور می گیره و محافظت میکنه. و هرچی زمان میگذره، ما مراقبت رو داشته باشیم به همین مقدار مختصر. خدا حتما ما رو مشتاق میکنه به بیشتر مراقبت کردن با تشویدها با امتیازات جور با جوری که در دنیا انسان نیاز داره و نیازمند هست خدا رو نیازها رو برطرف میکنه که مشتاق بشه انسان تشوید بشه به دنبال کردن مراقبت در همین حد رضا باید توجه داشت باید دقت داشت در قیامت داره که انسان ها دو گونه هستند انسان های و انسان های متوجه اینها همون هستند که در دنیا یا متحقیرند و یا متوجه افرادی که ساده هستند در دنیا خیلی خوب و, و متوجه نمیشن، اینا در آخرت هم خیلی مورد معافی قرار نمیگیرند اکثر اهل جنت اینها هستند افرادی که در دنیا خیلی پیچیده عمل نمی کردن. ساده بودن به دل ساده شو مردم اگر اشتباهی انجام می به دل نمی گرفتن نمی بولن کارهایشون با سادگی و صافی و صفا همراه بوده یک گروه هستن نه افراد باوش پر استعداد افرادی که در واقع خوب می چیکار کار باید بکنند اینا من بولن جا در قیامت باید جوابگو باشن اینا هستن که به جهت زیرکی، به جهت هوشی که دارم، توجهی که دارم میتونن در دنیا خیلی بلاها، دوربیاشون رو به رو به پا بندزن، کلا وبرداری کنن، مشکلات درست کنن و راه رسیدن به هوا و حوثشون برایشون با حوششون در اونجا باید جواب رو باشن لذا این نباید بعض ناراحت میشن از اینکه چرا بچه هاشون معمولی هست اطباقا افراد معمولی موافق تران هم در امور کاری و شغلی و هم در قیامت هم زندگیشون اینجا بهتر میترقه هم در قیامت کارشون آسانتر هست و مشکلاتشون کمتره.